<تصفيق> کتاب افسانه های از دهنشینان کرد گردآورنده آورنده منصور یابوتی ارائه شده از کانال تلگرامی هزار های افثان داستانهای ای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده زیبا صادق سلام شنوندگان عزیز و محترم یک داستان از این کتاب تقدیمتون میکنم به نام داستان شاخ یکی بود یکی نبود در روزگاران گذشته پیرمردی مردی زندگی میکرد که چون عمرش به صد سال رسید مرد تا پدر بود پسر و مادرش روزگار رو به خوبی میگیزنوندن یه روز مادر به پسرش گفت تو دیگه بزرگ شدی پا به بیست و هفت میذاری باید دستت رو به کاری بند کنی پسر گفت مادر سرمایه ندارم صنعتی هم که بلد نیستم چکار کار میتونم بکنم؟ مادر کیسه از توی صندوق چه در آورد و به دست پسرش داد و گفت این کیسه جادوییه. هر هرچقدر پول از اون در بیاری تموم نمیشه اون رو به گردنت ببند و به کسی نشون نده برو توی پایتخت و دکان بزرگی برپا کن پسر خیلی خوشحال شد و کیسه رو به گردنش بست و آزم پای تخت شد اونجا دکان بسیار بزرگی درست کرد و از انواع و اقسام جنس ها توی اون رید. اون چه جنس خوب توی دنیا بود در اونجا جمع کرد و با نصف قیمت به مردم میفروخت معلومی که بعد از یک هفته بازار تمام دکاندارها کسات میشه مردم به دکان پسر حجوم می بردند و جنسها رو با نصف قیمت میخریدند دوکاندار پیش شاه رفتن و شکایت کردند دختر شاه تصمیم گرفت برو سر از تعاتوی قضیه در بیاره پیش پسر رفت و خودش رو معرفی کرد و با زبون چرب و نرم و عدی ازدواج پسر رو فریب داد و کیسه رو ازش گرفت و دیگه پس نداد. سرمایه پسر بعد از مدتی تموم شد و ورشکست شد و با دست خاری پیش مادرش برگشت. ماجرای خودش رو بهشون گفت. مادر گفت قصه نخور. مگه نگفتم کیسه رو به دست کسی نده بعد رفت و از توی صندقچه یک سازدهنی آورد و به پسرش داد گفت با این سازدهنی میتونی کیسه رو پس بگیری پسر پرسید چطوری؟ مادرش گفت این سازدهنی هم جادویه هر وقت به اون پف کردی تا دلت بخواد از سوارای سوارهای و رو شمشیر به دست و سپر به دوش و شجاع بیرون خواهد اومد سوارها از تو فرمون می برند. به اونا دستور بدی یه روزه؟ نه، یه ساعته پایتخت و محاصره رو تصرف می کند. پسر سازدهنی رو برد و نزدیک پایتخت که شد روی تپه بلند ایستاد و پف به ساز کرد چند ساعت سا و هزاران سوار که بر اسبای نیرومند سوار بودند و گرز و شمشیر و سپر و سرنیزه داشتند در چندین صف طولانی جلوش صف کشیدند پسر فرمون داد که شر رو محاصره کنند اما به کسی اذیت و آزار نرسونند خبر به گوش پادشاه رسید که شاه تصرف شده و همین حالا که هزاران سوار حمله کنند و شهر سقوط کنه. پادشاه با وزیراش و درباریاش به مشورت نشست و به عقل هیچ کدومشون نرسید که این دشمن از کجا اومده. دختر پادشاه با نشانیهایی که به جاسوسان و خبرچینان رسیده بود فهمید که این پسر همون دکاندار معروفه. سوار اسبی شد و هفت قلم آرایش کرد و به بنشونه صلح پرچم سفیدی به دست گرفت و به خیمهگاه پسر رفت. دختر پادشاه قول حتمی ازدواج به پسر داد و این بار هم با نیرنگ پسر را فریب داد و سازدهنی را ازش گرفت و پف به ساز کرد که سوارها داخل ساز بشند. در یک لحظه همه سوارها تبدیل به بخار آبی رنگ شدند و از سوراخ ساز تو کشیدند. پسر این بار هم دست از پا دراستر پیش مادرش برگشت و شرح واقعه رو گفت. مادرش خیلی ناراحت شد. رفت توی صندوق و دونت دارو آورد و به پسرش سپرد گفت یکی از این داروها رو روی قضا بریزی و به هر کسی بدی اون شخص دو متر شاخ روی سرش سبز میشه. با داروی دیگه هم خوب میشه. برو و تا کیسه و سازدهنی رو با خودت نیاوردی؟ به خونه برنگرد. پسر داروها رو تو جیبش گذاشت و به پایتخت رفت. با مقدار پولی که داشت دکان کوچیکی درست کرد و اون رو از انوای میوه های رنگ و رنگ پر کرد. یه روز مستخدم شاب به دکانش اومد و سبدی میوه خوب برای شاه برد. پسر بدون اینکه که مستخدم بفهمه روی میوه ها از دارو پاشید. مستخدم سبد میوه رو برد شب شاه و زنش از میوه ها میل کردند. دخترشون اونجا نبود. فردا سک که از خواب بیدار شدند، شاها و زنش دیدند که روی سرش دو تا شاخ هر کدوم به قد دو متر رویده بود. توی کاخ ولوله شد. نجارها رو آوردند، نجارها شاخها رو میباریدند. اما فوراً روی سر پادشاه و زنش شاخهای دیگه سبز میشود. چه کنیم؟ چی کار کنیم؟ هیچی. جارچی ها رو به سراسر شهر فرستادن که هر کسی تونست علاج شاه ها رو بکنه اگه مرد باشه شاه دخترشو بهش میده اگه زن باشه سر تاپاش رو قلق میکنه بعد دو روز پسر لباس خوب پوشید و به این شرط که دخترتون رو رسما به عقد من در بیارید گفت که من میتونم علاج شاه ها رو بکنم پادشاه قبول کرد خیلی هم خوشحال شد دخترش رسما به عقد پسر آورد و پسر اون وقت گفت یک شرط دیگه هم باقی مونده پادشاه در حالی که با وحشت به شاخهای دراز روی سرش دست میکشی با صدای لرزون و چشمای اشبارش گفت هر شرطی بگی قبول میکنم اما اگه نتونستی شاخها رو ریشکم بکنی؟ وای به حالت با انگوش پسر رو تهدید کرد و گفت میدم پوست سرت رو بکنن بعد دست پات تو قطع قطعه میبرم بعد پوستت رو میکنم و پر از کاه میکنم پسر گفت شرط من ساده کیسه و سازدهنی رو پس بدید شاه با عجله دستو داد کیسه ساز رو بیارید زود بعد گفت تو داماد من هستی. تو رو وزیر خودم می کنم. پسر کیسه بو ساز رو گرفت. دستور داد شاخها رو ببرند. بعد از دارو روی آثار اون و شاخهای دیگه سمز نشدند. و در جای شاخها هم فرم موسفز شد. به همین ترتیب های روی سر ون پادشاه رو هم بریدند و از دارو به سر اونم مالیدند سر او هم خوب شد پادشاه پسر رو وزیر خودش کرد و وزیر در زمان وزارتش اصلاحات زیادی کرد